خانه گویای ایران صدا نداشته باشید بدانید چرا سر وکار من به زندان افتاد؟ هرچی بود دست و بالم بند شد و تا اومدم بخورن به جمد مرا از پله ها پایین و از مخلص با همه اهنوتولب و اسم و رسم عکس برداری و انگشت نگاری کردند و بعد هم مثل ظرف آشغال که خانمها از لای در به دست رفتهگر محل می دهند بنده را هم, هم تحویل بند دادند می شما هم این منظره را دیده اید؟ سابقا بچه شیطان و بازیگوش گربه را توی کیسه میانداختند و مدتی دور سرشون توی هوا چرخ می دادند بعد گربه را از کیسه بیرون میآوردند و موشی جدای او می انداختند گربه بیچاره چنان گیج و بود که تا مدتی حتی موش را نمی و به او توجه نمی آن روز هنگامی که من وارد کوریدور زندان شدم این حالت امینن در وجودم پیدا شد. به قدر ناراحت و گیج بودم که حتی حرفهای دو سه نفری را که اطرافم جمع شده بودند و دلداری هم می اما از اونجایی که انسان در برابر حوادث نرمش زیادی دارد و در مقابل پیش آمدها خیلی زود تسلی می شود، من هم زودتر از اون فکر میکردم حالم تغییر کرد به خصوص که پیش آمد بیشتر به این تغییر حالت هم کمک کرد شش بش غم بودم و مثل بچه های یتیم زانوهایم را بغل کرده و ماتم گرفته بودم که سر و صدای در کرهورها بلند شد و عدده زیادی از زندانیها به طرف در خروجی راه دادند. بعضیها با خنده و شوخی و عد ای با سروصدا چیزهایی میگفتند که از میان همه آنها من کلمه پخمه را میفهمیدم. معلوم شد زندانی تازه را آورداد که با اکثر برابچه بچهها آشناست. هر کسی یه چیزی میگفت. بچه ها پخنه را آوردند اوه سر و لباسش رو ببین. چه آدم شده هنوز رخت خوابش جمع نشده برگشت اینو میگن آدم حسابی آقای مهندس قلابی رو میگاه کن دماغسته خودم یادم رفت مثل سایرین جلوی در رفتم و منتظر شدم تا این پخنه را که این همه بچه ها برایش ابراز و احساسات میکردن بهتر ببینم سلیمان ننفروش با صدای درگش گفت ببینید این دفعه چیکار کرده مراد خفه کن. از پشت سر جواب داد یا فرمانده شده یا خودشا به جای استاندارها قالب زده پخمی هنوز کارهاش تمام نشده بود و بابا زكریا داشت رو بازرسی میکرد در زن با لحن نیشداری گفت پدر سخته هنوز نرفته برگشتی پخمی با ژست مخصوصش خنده بلند کرد راستش نتونستم دوری شما را تحمل کنم یکی از مامورین از پشت نیزش داد زد بلیت دو سره خریده بود بابا زکریا بازرسیش رو تمام کرد وقتی کیف پول او را واکرد با اخم گفت اینکه همش صد لیرو ده پانزده قراشه همینه که هست پدر سوخت بقیه را کجا گذاشتی به خدا همینه معلوم میشه این دفعه چیزی به طورت نخورده بابا زکریا کیف پول پخمه رو به دستش داد و واردش کرد اگر کسی پخنه و نمیشناخت خیال میکرد یک آدم حسابی پالتو پشم شطور های چرمی و شلوار سیاه و کفش‌های براقش مثل میلیونرها میماند به محض اینکه وارد بند شد با تمام ها دست داد و پرسید، کرد و بعد مثل کسی که به خانه خودش آمده یک راست رفت توی اتاق و لباسهاشو درآورد و رفت ما من همینطور یک گوشه نشسته بودم و این منظره را تماشا میکردم خیلی دنم میخواست بفهمم چرا به این آدم پخمه میگن اما سردر نمی آوردم پخمه مثل تازی دامادها ترگل و ورگل از همم بیرون آمد و در حالی که با اشاره سر با بچه ها پرسی میکرد یک راست به طرف کافه زندان رفت مثل کاهی که به طرف آهنربا با کشیده میشود بی اختیار به طرف کافه رفتم پخمه وسط بچه ها نشسته بود سرش را راست گرفته و با وقار و متانت مخصوصی داشت را میخورد. و داستان دو سه روز آزادیاش رو تعریف می کرد. یک هو چشمش به من افتاد. نمیدانم چه چی چیزی در صدا و قیافه من دید که با لحن مخصوص و معدبی صدا کرد: آقا بفرمایین اینجا. همه زندانی ها به من نگاه کردند. من که مثل بچه ها غریبی میکردم و یک گوشه ایستاده بودم، دست و پا کردم کردم پخمه بلندتر گفت: بفرمایید آقا، اینجا همه با هم برادرم تشریف بیاورید. چرا غریبه می‌کنید؟ میخواستم برگردم و برم سر جام اما بچه ها دستم رو گرفتم و بردند پیش پخمه و او با لحن ای داد کشید قدری یک چایی تمیزگارشو بکن بر روشو کرد به من شما مسافر تازه این؟ من یواشکی جواب دادم بله یکی از بچه ها با خنده گفت هنوز نمک زندان را نچشیده بچه ها خندیدند. پخمه با چشم های ریزش چشم قره ها رفت و از من پرسید شغلتان چیه من سکوت کردم اما یکی دیگه جواب داد روزنامه نویسه پخمه یک نگار خریداری به سرطاپای من انداخت و بعد با بچه ها مشغول صحبت شد موقع شام پخمه من به اتاقش برد و از دوستان و رفقایش دو تا پتو و یک بالش برای من گرفت خلاصه اینقدر من محبت کرد که درد و رنج زندان را فراموش کردم وقتی او دو تا از سیگارهای اعلی و خوشبو را آتش زد و به دست من داد بدون مقدمه پرسیدم. شما چی را زندان آمدید برای خاطر کتلت من تعجب کردم و پخمه در حالی که با صدای بلند میخندید ادامه داد جدی میگم تمام بدبختی من سر چند تا کتلت شروع شد مدت هاست انتقام همین کتلت ها را پس میدم پنج شش ساله که من خودم نیستم هر روز و هر هفته یک قیافه در میام الان هم که پیش شما نشستم نمیدونم کی هستم یک روز بازرس شدم یک وقت دکتر شدم، مدتی مهندس بودم، خلاصه هرچی بگی شدم، غیر از خودم. اگر یک نفر از عقب صدا کند، علی، احمد، محمد، حسن، من خیال میکنم با من کار داره. چون ست تا اسم دارم. با حیرت پرسیدم یعنی چی؟ جواب این شما خیلی مشکله و باید مقدمهای مفصل برایش چید. خلاصه اینکه سرنوشت آدم رو خیلی زیر رو میکنه. هیچ کس نمی‌دونه فردا چه اتفاقی براش میافته؟ مثلا داریم راه یک یک‌دفعه طمون به سنگ میخوره و یا اینکه می‌افتیم توی جوی آب و همین موضوع باعث میشه که از یک حادثه بزرگ جان سالم به در صبح از خونه بیرون میاییم، برویم دنبال کاری که در نظر داریم. یک دوستی سر راه من ساق میشه و پس از زاهوارپرسی ما رو به جای میبره که در آنجا عاشق یک دختر خوشگل میشه. و بعد باهاش ازدواج میکنیم. به عقیده شما به این چیزها چی میشه گفت؟ ها؟ اگر پایمان به سنگ نمیخورد و یا توی جوی آب نمی و یا اون دوست را نمیدیدیم زندگی ما شکل دیگری میگرفت داستان من هم نزیدینی که از همین حوارث است که به خاطر خوردن چند تا کتلت نصیر زندگیم هم عوض شد از این مقدمه چینی هایش داشت حسن هم سر میرفت دلم میخواست زودتر اصل داستانش را شروع پخمه؟ پاک محکمی به سیگارش زد و ادامه داد آن روزها من شاگرد دبیرستان نظام بودم بعد یکباره سکوت کرد چشمهایش را به دخت توخت خیافهاش نشون میداد که از یادآوری این خاطره خیلی ناراحت شده آهی کشید و آرام آرام گفت در این مدت چه ها به سرم آمده از کجا به کجا آمدم حیف که جوانی و نادانی دامنگیرم شد و با دست خودم خاک توی سرم ریختم اگر بدونید در مدرسه چه زرنگی بودم هر سال اول یا دوم می شودم. در ورزش نظیر نداشتم سال آخر بود و یک نیم دیگر به دانشگاه افسری میرفتم. در آن موقع ما شبها کشیک داشتیم و هر شب یکی از دانشجوها میبایست بایست کشیک بدهد یکی از وظایف کشیکچی ها نظارت در تقسیم خوراک بود هر وقت برنامه غذایی معالی بود به هر کلکی میشد یکی از رفقا را برای کشیک انتخاب میکردیم. بین ما یک نفر بود به نام جنگل شاهین. هر وقت نوبت کیشیکش کش می شد بیداد میکرد. اما من برعکس همه بچه ها در این قسمت بی دست و پا بودم. هر وقت میخواستم یک ظرف غذا از آشپزخانه کش برم به قدری دچار ترس و لرز می شدم که حد نداشت رنگم می پرید عرق از مرره پشتم سرازیر می شود. به همین جهت همه بچه ها اسم را گذاشته بودند پخمه و هر وقت اشقشان گل می کرد سر, به سر من میگذاشتم و مسخرم میکردند. شبها موقع خواب یکی پتوم رو داشت یکی شورتم رو می‌کشید. برهان شیپور دهنشو پر آب می‌کرد و می پاشید توی صورتم. خلاصه اینقدر اذیتم کردن که تصمیم گرفتم منم مثل اونا بشم. یک شب که کشیک نوبت من بود، بچه ها دستور دادند برم براشون از آشپزخانه غذای اضافی بیارم. این همان کاری بود که من می‌ترسیدم. گفتم رفقا امشب حقی بالیوس افسر کشیکه. من نمیتونم این را بکنم. اگر بهفهمه پدر پدرمو در میاره ولی رفقا فقالم نکردند هرکی می باشه اگر میترسی بگو بالاخره شاخ را گذاشتند و من با اینکه میدانستم دانستم حقیبالیوس چه آدم سختگیر و بد اخلاقیه به طرف آشپزخانه رفتم. حقیبالیوس از آن افسرهای قدیمی بود. گرچه سواد و معلومات زیادی نداشت اما چون خیلی قوی و با تجربه بود همه بچه ها مثل سگ ازش میترسیدم. فییاسی عجیبی داشت روی صورتش جایی یک رختمی بزرگی بود که قیافش را مردانهتر نشان میداد. از حرکات جیلت مخصوصاً بلند خرمیدن دانشجوها خیلی بدش می آمد به ما نصیحت می کرد سرباز باید همیشه صورتش سایه داشته باشد او هیچ وقت دانشجوها را کتک نمیزد. ولی وای به وقتی که عصبانی میشد. سالی دو سه بار آن روش بالا می و کسی که مورد بیمهری او واقع می گردید جای سالم در بدنش باقی نمی ماند. برهان شیپوری را چنان کتک زد که بیچاره مثل توپ بازی از این دیوار به آن دیوار میخورد وقتی هم به زمین افتاد تا مدتی بلند نشد. پرسیدم اسم این دوست شما چرا برهان شیپوری بود؟ پخمه به صدای بلند خندید و جواب داد هر کدام ما یک اسمی داشتیم و این اسمها هم دلیل و علتی داشت. برهان شیپوری همیشه گوش به زنگ شنیدن شیپور شام نهار بود. بعد مکسی کرد و ادامه داد این افسر ما یک حسنی هم داشت. هر کس را تنبیه می کرد آخر سار با هر کلکی بود از امتحان قبولش می کرد و با این کار تلافی کتک زدن را در میآد. سالیح شم در درس جبر ضعیف بود. همهش به سر جناب سروان میگذاشت تا کتک بخوره و در امتحان قبول بشه. اما حقیبالیوز کلاه سرش نمیرفت. سالخ شم پشت سر او شیشکی میبست و صدای بغاله در میآد ولی حتی اهمیت نمیداد. یک روز جناب سروان کفرش بالا آمد. صالح شم خوشحال شد. خیال میکرد الان کتک میخوره و نمره امتحان درست میشه. اما جناب سرمان باز هم کتکش نزد گوشش را گرفت و برد توی انبار و در را محکم بست. ما همه پشتی در جمع شدیم و میخواستیم بفهمیم اون تو چی خبره. کوچک‌ترین صدایی نمیآمد. یکی از بچه‌ها گفت: "گمان میکنم کشتش." بعد از چند دقیقه ساله آمد بیرون، چشمهاش باد کرده بود. ازش سوال کردیم چی شد؟ با گریه جواب داد هر کاری کردم کتکم نزد دو تا سیگار دیگه روشن کرد و ادامه داد با مشخصاتی که از این افسر گفتم و از بدشانسی کشیک من شب افتاده بود که او کشیک بود و اگر میفهمید که من از آشپزخانه غذای اضافی کش رفتم حسابم رو میرسید اما چاره‌ای نبود کشیک را تحویل گرفتم هم کشیک من جوانی بود به اسم بسری کتفی این اسم را به این جهت روی او گذاشته بودند که هر وقت عصبانی میشد شانه چپش تکان میخورد این بصری کتفی یکی از تنبل های روزگار بود بالاخره با هزار زحمت آسایشگاه را تمیز کردیم و قرار شد او کشیک آسایشگاه را به عهده بگیرد و من نمور آشپزخانه باشم و در عوض شش تا کتلت به او سرانه بدهم بصری قبول کرد و ما آماده رفتن سر پستهایمان شدیم از آنجا که هرچه سنگه برای پای لنگه هنوز آفتاب غروب نکرده و هوا کاملا تاریک نشده بود که خبر آوردن یکی از افسران ارشد برای بازرسی آمده. فوراً تمام بچه ها سر کلاس هایشان رفتند و من هم مشغول بازرسی آشپزخانه شدم. این بازرسی عالی رتبه از مرکز آمده بود و چون خیلی خسته بود، بازدید مختصری کرد و قرار شد استراحت کند و بقیه بازرسی برای فردا بماند. کمار زنگوله پیش من آمد و گفت: نمی‌دونی این مارچور چقدر شبیه تو بود؟ اولش باور نکردم ولی وقتی شاهین و برهان شیپور و چندتا دیگه از رفقایم هم این موضوع را تصدیق کردند فهمیدم شوخی نمیکنم حتی یکی از افسرها از من پرسید شما با این مارشال نسبتی دارید این حرفها مرا خیلی وسوسه میکرد به حدی که دلم میخواست همان شبانه برم و مارشال را ببینم شیپور حاضرباش زدند همه دانشجوها توی حیات جمع شدند جناب سروان صداقت. سرگروه گروهبان کیشیک پیش. من فوری پیش دمیدم، پرسید: کارها مرتبه؟ بله جناب سروان خیلی خوب، شام را زود حاضر کنید. بعد از شام یک قابلمه پر کتلت برداشتم و به طرف اتاق بچه ها راه افتادم. مطمئن بودم که افسر کیشیک خوابیده. ولی باز هم احتیاط کردم، از کنار دیوار راه افتادم، میخواستم از دری که پشت آسایشگاه وارد بشم. این در مخصوص رفت و ها نبود. مسلماً آن موقع شب کسی مزاحم ما نمیشد. غافل از اینکه با عوض کردن راه، مسیر زندگیم عوض میشه. اگر از همان پله‌های جلوی ساختمان به طرف آسایشگاه می‌رفتم، حالا به جای یک دوز سابقه دار، یک ژنرال بودم. پخمی حرفش را قطع کرد. قنعمتی توی صورتش ولو شده بود. مثل دختر کوچولو که عروسکش را از دست گرفته باشند، بغزش گرفته بود. من برای اینکه دلداریش بدهم گفتم: هر کسی سرنوشتی داره. آینده دست خود ما نیست. اما معلوم بود که پخنه این حرفها را قبول نداره. چشمهاش برقی زد سرش را بالا گرفت تا حرف بزند. و من که دیدم بحث ما به جاهای باریک می کشد پیش دستی کردم و پرسیدم خوب بعد چطور شد؟ وقتی وارد راهرو شدم دیدم یک نفر داره به طرفم میاد. بچه ها حق نداشتند بعد از شیپور خواب از اتاقشان خارج بشند. فهمیدم او یکی از مخصوصا از صدای قرچ قرچ هاش دانستم سروان بالیاز است چنان دست پامو گم کردم که مثل موشی که گربه میبینه سر جان وایستادم لحظه خطرناکی بود اگر جناب سروان با قابلانهی کتلت مرا دید حسابم پاچ بود در همان حالت گیجی و ناامیدی بدون اراده در که كه كنارش بودم باز کردم و به سرعت داخل اتاق شدم و در را بستم صدای پای سروان نزدیکتر میشد پشت در اتاق كه رسید ایستاد اینگار یک چیزی توی دلم پاره شد خدایا اگر مرا دیده باشد و بیاد تو تکلیفم چیه هرچی دعا به خاطر داشتم خواندم و به خودم فوت کردم که از دست جناب سروان جان سالم بدر دارم دعا مستجاب شد و پس از چند لحظه جناب سروان راه افتاد و با قدمهایشو شمرده دور شد یک کمی که حالم جا اومد و حواس پنجگانه شروع به کار کرد صدای خورپوف عجیبی به گوشم خود تا به حال از بس ناراحت بودم متوجه این صدا نشده بودم سرم را برگردانم که یک نفر روی تخت خوابیده و یک دست لباس ژنرالی روی دسته صندلی کنار تختخواب آویزان بود آه از نهادم در آمد ای دل قافل چه بدبختی بزرگی برای من بیچاره چرا مثل دوزهای ناشی به کاهلان زدم خُرپوف او مثل صدای یک دسته موزیک چهل نفری بود که کنترل آنها از دست رهبر ارکستر خارج شده باشد گوشم را به در چسبوندم میخواستم مسیر حرکت جناب سروان رو بفهمم میدانستم که او برای سرکشی آسایشگاه ها میرود و حتما پس از چند دقیقه برمیگردد و من میبایست آنقدر توی آن اتاق بمانم تا جناب سروان کارش تمام شود و به اتاقش برگردد دل توی دلم نبود خدای نکنه این ژنرال بیدار شه نکنه سروان موقع برگشتن سری توی اون اتاقه بکشه قابلمه را رو یواشکی روی صندلی گذاشتم. در آن حال بدبختی از دیدن پایین و بالا رفتن لاحاف خنده هم گرفت وقتی ژنرال نفس میکشید پتو به اندازه ده پانزده سانت بالا میآمد و هنگامی که پف کرد مثل بادبادکی که سوراخ بشه پتو یک دفعه پایین میرفت نمیدانم چه بدبختی یقمی را گرفت که فکر کردم لباسهای ژنرال را بپوشم پیش خودم فکر کردم که اگر جناب سروان به این اتاق سرکشی کند وقتی مرا در لباس ژنرال ببیند متوجه موضوع نمیشود و خیال میکنند ژنرال بیدار است و مشغول مطالعه میباشد با سرعت لباسهایم را بیرون آوردم لباس ژنرال را پوشیدم کلاه را هم سرم گذاشتم و لباسهای خودم را زیر صندلی گذاشتم داشتم کلاه را رو رو روی سرم جابهجا میکردم که جناب جنابسروان بالیوز آهسته و بی صدا در را باز کرد و سرش را تا گردن به داخل اتاق آورد از دیدن من چنان یکهای خورد که در را ول کرد و احترام گذاشت و در چنان محکم به دیوار مقابل خود که صدایش تا ته corridors رفت. ای داره بیداد این بدبختی را چطور جبران کنم؟ جنو همانطور دست بالا و با کمال احترام پرسید: عواملی دارید؟ نمیدانستم جوابش را چی بدم. اگر گفتگو طولانی بشه هم ممکن مرا به و هم ممکن ژنرال از خواب بیدار بشه. با اشاره سر و دست فهماندم که بیرون کال لازمی دارم و فورا از اتاق خارج شده به طرف انتهای راه رو حرکت کردم. جناب سرمون هم همونطور دست بالا به دنبالم افتاد. نمیدانید چه حالی داشتم. فکرم ابدا کار نمیکرد و تمام حرکاتم غیر ارادی بود. جناب سرمون که گمان کرده بود ژنرال به توالت احتیاج دارد، توی راه را به طرف توالت دوید و در را باز کرد. قربان همینجاست. من اطلاع نکردم و همانطور با سرعت پیش رفتم. برای اینکه بهتر وضع را پیش خودتان مجسم کنید، نقشه مدرسه را برای شما تعریف کنم. ساختمان مدرسه در وسط محوطه ساخته شده و مکعب شکل بود. در سرتا سر ساختمان راهروه بزرگی بود که از چهار طرف وسیله پله‌های کوتاهی به خارج می‌رفت. در دو طرف این راهروها های دانشجویان قرار داشت. و جناب سروان وقتی دید من به طرف آسایشگاه‌ها میروم گمان کرد در آن موقع شب تصمیم بازرسی دارم پرسید: "قربان به آسایشگاه‌ها تشریف می‌برید؟" نمی‌دانستم چه جوابی بدم. چطور از دست او فرار کنم؟ میدانستم که اگر گیر بیفتم بلایی به سرم میاره که تا آخر اون توی بیمارستان بیفتد خدای خودت رحم کن همینطور که داشتم میرفتم نقشه میکشیدم که چیکار کنم توی کوریدور به غیر از ما دو نفر کسی نبود میدانستم رفقا همه خوابیدند. یا اینکه خودشان رو به خواب زدن از این راه رو که رد شدیم به راهروی دست چپ پیچیدیم. به نظرم رسید وقتی جلوی کلاس خودمان رسیدیم یک بپرم توی اتاق وزیر پتو قایم شم اما این کار عملی نبود بچه ها بیدار می و گند کار بیشتر در میآد. خدایا چیکار کنم؟ تا صبح که شود توی راهرو راه رفت؟ یک دفعه فکری به نظرم رسید. چطور دوباره به اتاق ژنرال برگردم و در را از تو ببندم. جناک سروان آنجا کمتر می توان مزاییم شود. این بد فکری نبود. همینطور تا ته راهرو رفتم و دوباره به راهرو اولی پیچیدم و به طرف اتاق ژنرال رفتم. در اتاق ژنرال را کمی باز کردم. ولی مثل آدم های مارگزیده خودم را عقب کشیدم و در را بستم جنرال ژنرال از خواب بیدار شدیم مشغول خوردن کتلت ها بود به همین جهت متوجه من نشد ولا گند کار حسابی در می آمد. دوباره به دنبال من راه هفتاد باز هم همون مسیر اولی را پیمودم. باز هم جنوب سرون دری توالت را باز کرد. من قدم را تند کردم جناب سروان تند کرد. من باز هم تندتر را افتادم جناب هم تندتر حرکت کرد یک دفه نمیدانم چه چی چیزی فهمید و از چی مشکوک شد که دست انداق شانهای مرا بگیرد. من مثل ماهی از زیر دستش در رفتم و شروع می دویدن کردم. من می دویدم و جنابسون بالیوز هم دنبالم میدوید. در همان حال لباسهای ژنرالی را در می آوردم و به اطراف پرت می کردم. در اثر این سر و صداها بچه ها از آساایشگاهها بیرون آمده و جلوی درها جمع شده بودند. یکی می گفت ژنرال چیکار کرده که جنوبسون دنبالش میکنه. دیگری می گفت ژنرال و جناب سرون بازی موش گربه میکن هر تیکه لباسی را که من در میآوردم و به زمین میانداختم جنابسون مجبور بود خم بشه و از زمین برداره که به لباسهای های ژنرال توهین نشه و همین موضوع باعث شد که من مسافت زیادی جلو افتادم از ترس به خضی خودم را گم کرده بودم که متوجه نشدم تا کفش ها در نییارم شلوارم در نمیاد همینطور که می دویدم دکمهه شلوارم را باز میکردم شلوارم افتاد به روی پاها ولی از توی کفش هم در نمیاممد به همین جهت با سر به زمین خوردم و جناب سرروون هم که به سرعت دنبال من می آمد پاش به من گیر کرد و سه چهار متر آن طرفتر روی زمین ولو شد با هر زحمتی بود شلوارم را درآوردم و تا جناب جنابسون خواست به خودش بهجنبد از جان بلند شدم و به طرف دیگه راه رو دویدم یک کمی هم بازی و شلوار دویدم و مثل باد وارد آسیشگاه خودمان شدم و شیرج رفتم توی تختخواب خودم و پتو را به سرم کشیدم. پس از چند دقیقه جناب سروان در حالی که لباسهای ژنرال را به دست گرفت بود، وارد آسایشگاه شد و از همان جلوی در داد کشید این کی بود. میدانستم ها ممکن نیست مرا لو بدهند و باز توی دلم دل نبود. جناب سروان دوباره سوالش را تکرار کرد. زود باشید بگید. اما از هیچکس کس صدایی در, صدای در نیامد، مثل اینکه همه خواب بودند. جناب سروان مسئله سوم حرفش را تکرار کرد. همه ای ما اخلاق و را خوب میدانستیم. اگر کسی باهاش دوراستا میکرد گناهش رو حترت هم بزرگ بود میبخشید اما اگر بهش نارو میزد تا آخر دنیا ول معامله نبود چند دفعه خواستم از زیر پتو بیام بیرون و خودم رو معرفی کنم اما این عمل من چیزی نبود که قابل بخشش باشد به همین جهت سرم را بیشتر زیر پتو فرو کردم و می که نفس هم نکشم جناب سلمان چنتو فوش آبدار نثار اموات و پدر و مادر ژنرال قلامین بود و بعد برای پیدا کردن او شروع به بازرسی تمام تختخواب ها بود. من هوری ریخت و سرتاباپم شروع به لرزیدن کرد. خودم رو بیشتر زیر پتو جمع کردند. روی تختخواب پهلویی با سری بیچله خوابیده بود. جناب سروان از او سوال کرد: دیدی کی بود؟ با سری با صدای بلند جواب داد نه ندیدم جناب سروان چون من بیچاره نتونسته بودم که ها مادر بیارم و از بعد وقتی یک پام هم از پتو مانده بود بیرون گیر کردم. جناب سروان پامو گرفت و محکم کشید. بلند شو ببینم ما در ورده. با زیر شلواری و زیر پیراهمی از زیر پتو اومدن بیرون. بچه‌ها که خندهشون گرفته بود، با زحمت خودشان را نگه می‌داشتن. جناب سروان داد زد لباساتو بپوش. لباس ندارم. یعنی چی لباسات کو؟ توی اتاق ژنرال مانده. چشمای جناب سروان از عصبانیت تنگ در شد و داد کشید خاک بر مگه اتاق ژنرال رخص من ساکت مانده. کچکامو به زمین دوختم و منتظر شدیدترین تنبیه ها بودم جنو سربون توف محکمی به رویم انداخت توف دنبال من بیا این دستور چنان محکم و سربازی ادا شد که بوی مرگ میداد هیچ چاره ای نبود سرم رو برگرداندم نگاه مایوسم را رو رو روی صورت تمام بچه‌ها که سرشان را از پتو بیرون آورده و با دلسوزی مرا تماشا میکردند گرداندم و از در بیرون رفتند تا ببینم چه سرنوشتی منتظر من است واقعا دنیا رو ببینید چند دقیقه پیش جناب سروان دست بالا و با احترام پشت سر من می آمد و حالا من مجبور بودم به دنبال او راه بیفتم یک راست رفتیم توی اتاق جناب سروان صد سر در سر می دانستم که به قصد کشتن مرا می زند فکر کردم به التماس بیفتم و خواهش و تمنا کنم اما این کار فایده نداشت برای اینکه اخلاقش رو را میدونستم هرچی التماس بکنم بیشتر میزند از طرفی دیگه به ریخت من نمی آمد التماس بکنم خداخدا میکردم موقع کتک خوردن از هوش برم و زیاد زاج نکشم توی اتاق من کنار دیوار ایستادم و جناب سرون مدتی توی اتاق قدم زد بعد یک دفعه برگشت و به من نگاه کرد نگاهش به قدری خشین و فحشیانه بود که انگار خروارها گلوله به روی زمین میریزد کاش زودتر کتکم بزنه و راحتم کنه جناب سرون فاصله ای را که بین ما بود با دو قدم بلند کرد، دست‌های سنگینش را مثل دو تا پوتک بالا برد ولی فرصت نکرد پایین بیاورد چند ضربه پشت سرهم به در خورد و بدون اینکه جناب سروان اجازه ورود به کسی که در می‌زند بدهد، افسر کیشیک خراسان وارد اتاق گردید و با لکنت زبان گفت: جناب سروان، ژنرال، ژنرال. بالیوز حقی آدمی خون سردی بود. تا حالا کسی ندیده بود دستپاچه شود. ولی این بار به محض شنیدن موضوع، چنان منقلب شد که زبانش بند آمد. ژنرال، چی؟ چی شده؟ حالش خرابه. والیوس حقی نگذاشت افسر کیشیک حرفش را تمام کند. و مثل گلوله از در اتاق بیرون رفت صدایی رفته اومد عد روی پله ها و توی راهرو به می رسید. نمی دانستم چیست همانجا بمانم تا جناب سروان برگردد یا برم با آسایشگاه یا منم دنبال آنها راه بیفتم. می هر کاری بکنم باعث عصبانیت جناب سروان بشه. کمی ایستادم و فکر کردم بعد سرم را از در بیرون آوردم و توی راه را نگاه کردند عد شلوغ می‌کردند و از این طرف آن طرف میدویدند وارد راهرو شدم از پله بالا رفتم. دکتر با هیکل چاق و گندش توی راهرو میدوید و میخواست به اتاق ژنرال برود من هم دنبال او راه افتادم توی اتاق منظره ای دیدم که نزدیک بود از خنده روده بر بشم ژنرال با پیراهن و زیر شلواری سفید به پشت خوابیده بود در حالی که شکنش مثل دوهل باد کرده بود ناله میکرد. کرد جناب فرما که منتظر دکتر بود وقتی چشمش به من افتاد گوشم رو گرفت و کشی توی راهرو چرا اوماده اینجا پدر سوخته لباس اینجاست زیر صندلی مانده. جنابسروان لباسهای مرا آورد و توی بغلم پرت کرد برو گم شو فردا بیا کارت دارم خدا پدر ژنرال را بیامرزه که با مریض شدنش باعث نجات من شد با اینکه نصف شب بود تمام بچهها بیدار مانده و منتظر نتیجه کار من بودند همه دورم رو گرفتند هر هرکس سؤالی میکرد چطور شد کتکت زد با چی زد هیچی با با شانس آوردم ژنرال حالش خراب شده و من نجات پیدا کردم برهان شیپوری پرسید ژنرال چرا حالش خراب شده نمیدانم بعد تمام غذایا رو برای بچهها تعریف کردم از بعد که خندیدن دلشون درد گرفت صبح که از خواب پا شدند تمام حوادث شب پیش را فراموش کرده بودم برنامه صبحگاه که تمام میشد یک ساعت استراحت داشتید رفقا هرکدام مشغول کاری شدن و من هم مشغول نوشتن نامهای برای پدرم شدم. پدر و مادرم در قیصریه یکی از شهرهای ترکیه ساکن بودند پدرم سابقا در قسمت دفتری ارتش کار میکرد ولی مدتها بود بازنشسته شده بود و خانه نشین بود غیر از من هفت تا بچه دیگه داشت و چون من از همه بزرگتر بودم چشم همهشان به دست من بود که هر چه زودتر ناناور بشه. پدرم هر ماه صد لیره در حدود پنجاه ریال برایم میفرستاد و من می دانستم که همین مبلغ جزئی برای او خیلی مشکله. به همین جهت هم هر وقت کاغذش میرسید مقدار زیادی پند و نصیحت می نوشت و تحکیب می میکرد در درسها بیشتر دقت کند. اخلاق و رفتارم خوب و پسندیده باشد من هم جواب او را مفصل می نوشتم و اطمینان می دادم که روز به روز درسم بهتر می شود و برای موفقیت در امتحانات زحمت می کشم حتی چند بار نوشتم که مطمئن باشید در امتحانات آخر سال اول نفر خواهم شد نامه به آخرهاش که رسید و من ششتا مشغول نوشتم بودم که پشت گردنم احساس سوزشی کردم مثل این بود که زنبور نیشم زد زن. بی اختیار و با سرعت دستم را پشت گردنم بردم و شرق پس گردانی محکمی خودم زدم صدای شلیک خنده بچه ها بلند شد و من تازه فهمیدم که ساله شم با سیم بلندی که از کنار تخت به طرفم درست کرده پشتی گردنم زده. این رسم بود هر وقت کسی مشغول یک کار جدی بود و خیلی در کارش غرق می رفقا سر به سرش میگذشتند. ساعتها میخندیدیم متفه می کردیم. اما نمیدانم چرا آن روز من تا این حد عصبانی شدم و مثل شیری که بچه هش رو از بغلش گرفته باشند از جا پریدم و به روی سالکشم افتادم. صدای بزن بزن و تشویق بچه ها از اطراف بلند شد. هی hey, جانمی! آفین به خفه خفهش کن سالخشم اولش کمی خندید ولی بعد دید که من جدی دارم میزنمش از جایش بلند شد. وسط آسایشگاه با هم گلوز شدیم و چون او از من قویتر بود با دستایش بلندم کرد و چنان فشار داد که اوقم گرفت. بچه ها از صدای مخصوصی که از گلوم بیرون میآمد به طوری قهقه زدند که صداشان تا ته کلی رفت. من از شدت عصبانیت مثل دیوانه ها شده بودم تمام قوایم را جمع کردم و صالح را محکم به دیوار گفتم حالا برد با من بود و بچه ها داشتن من را تشریخ می کردند در این موقع یک نفر می خواست در را باز کند اما صالح جلوی در تکیه داده بود و باز شدن در بود تا حواس من رفت پهلوی در صالح پشتی پایی به زد و هر دو مثل درخت طوفان زده و آسایشگاه ولو شدیم. من همینطور که به پشت افتاده بودم و سالح روی سینه‌ام نشسته بود از بالای شانه او قیافه عصبانی و برفروخته جناب سرون بالیوس حقی را دیدم که وارد آسایشگاه شد. صدای دادفریاد فریاد بچه‌ها یک بار شد. من می‌خواستم بلند بشم ولی سالح شم که از قضیه خبردار نبود مانع میشد در این تقلا و تلاش ساله شلوارم را گرفت و کشید و یک دفعه دکمه‌های شلوارم باز شد و شلوارم از پایم افتاد. جناب سروان با نوک چکمش چنان اردنگی محکم به پشت ساله شم زد که ساله مثل تاپاله روی زمین پَهن شد. سرش سرشو به عقب برگرداند. به محض اینکه چشمش به جناب سروان افتاد، از روی سینه من بلند شد، من هم دگمای شلوارم رو بستم و بلند شدم سر پای ایستادم. جناب سروان گوش ساله را گرفت و مثل لباس شسته پیچاند. دیدم کار ساله هم داره بیخ پیدا میکنه گفتم جناب سروان، پرسید چیه؟ سرم را پایین انداختم و آهسته جواب دادم سالح تقصیر نداره او داشت درسهاش حاضر میکرد من عذیتش کردم جنوب سرمان گوش سالح را ویل کرد و به طرف من آمد تو هیچ وقت نمیخوای آدم بشی من هیچ جوابی ندادم منتظر بودم که با دو تا کشیده چپ و راست ازم پذیرایی کنه اما اون کار را نکرد در حال که دندانه را به هم فشار میداد و مشتهایش را گره کرده بود، را گفت دنبال من بیا جناب سروان از اتاق خارج شد و به طرف راهرو رفت. من هم مثل محکومی که به پای دار میره، آهسته و بی دنبالش راه افتادم. خدا میداند توی راه چه ولتی داشتم تا به حال او را اینقدر عصبانی ندیده بودم. نرسم توی اتاقش در رو محکم بست و پرسید: چرا این کار کردی؟ اون گلی که دیشب به آب دادی، اینم امروزت. من همانطور ساکت ایستاده بودم. جناب سروان داد کشید: چرا نال شدی؟ چی بگم؟ بدبختی آخرم را گرفته. آخه چرا این کارها را میکنی پسرم من از این کلمه‌ی پسرم تعجب کردم برای اولین بار بود که جناب سروان اینطور با کسی حرف میزد آهسته سرم را بلند کردم و به صورت او نگاه کردم چشمهاش از اشک پر شده بود جرأت پیدا کردم و گفتم شیطان گلم زد نفهمیدم دیشب شیطان گلت زد امروز چی نمیدانستم چی جوابش را بدم و سروان خیلی شمرده و آرام گفت من خیلی سعی کردم فرمانده دویرستان را راضی کنم از تقصیراتت بگذاری. اما متاسفانه نشد و از مدرسه اخراجت کردم. سرم گیج رفت و پرده سیاهی جلوی چشمون را گرفت و مثل این بود که سقف اتاق را توی سرم زدند. دیگه حرفای جناب سروان را نمی شنیدم و هر چی می گفت متوجه نمی شدم. یک دفعه به گریه افتادم. جناب سروان هم باقص کرده بود. با صدای گرفته گفت. تو افسر خوبی میشودی اما حیف که ژنرال هم قضیه رو فهمیده و دیگه هیچ جوری نمیشه درستش کرد. شاید سرنوشت شما اینطور بوده. برو را جمع کن و آماده باش تا نامت درآسه. من پیش رفقا برگشتم. همه از شنیدن این موضوع ناراحت شدند و هر کدام یک جور هم می میدادند. اگر قرار باشه یک نفر ترفیع بگیره و تشویق بشه، لااقل دو سه هفته طول میکشه تا بهش ابلاغ کنند. اما حکم اخراج من دو سی ساعت بیشتر طول نکشید و تمام کارها با سرعت رو به شد در حالی که پدر و مادرم منتظر بودند پسرشون یک ماه دیگر به دانشگاه افسری برود پاگون مرا کندند و از دبیرستون نظام اخراجم کردند ما انسانها تصور چیزی را که نمیکنیم می به سرمان می‌آید در این موقع صدای پخمه چنین بغض‌آلود بود که نتوانست به حرفایش ادامه دهد سیواری از توی جیبش بیرون آورد و آتش زد و برای چند لحظه سکوت کرد از توی کوریدور صدای قدری بلند شد. این معرفت فقط واسترش 5 سال دیگه میارزه. صدای دو دیگری جواب داد من دیویست چوب طالبم اگر کسی نخرید مخلصم هستم. در سلول ما با صدای خشکی باز شد. قدری با ژست تأخیرامزی پالتویی را که روی دستش بود توی بغل پخمه انداخت. سال دیگه بیشتر نمیخواد. پخمه که نمیخواست من از این موضوع خبر بشن خیلی ناراحت شد و با بی جواب داد ناجیونم به درذ خودم بیشتر میخوره. قدری کنار لبهایش را بالا کشید بهتر ترشیاش بندازی و بعد هم در اون محکم به هم زده خارج شد پخمه با نراحتی گفت اینها تربیت ندارند همهشون بیار هستند چون من چند روز بیشتر نمی‌مانم، می‌خواستم میخواستم پارتو را بفروشم من متوجه نراحتیش شدم و خواستم مطلب رو عوض کنم خوب جریان کارت چی شد؟ بله پدر و مادر منتظر بودن تو سرشون با لباس افسری برگرده چشمشان به جمال جوانشان نوبه چشمشان افتاد که حتی یک دستو هم نداشت در این موقع شام من او پخمه جیره نداشتیم شب اول هیچ زندانی غذا و جیره ندارهم پخمه پیشنهاد کرد بریم توی بوفه زندان چیزی بخوریم من معذرت خواستم چون نه اشتها داشتم و ندارم دلم میکشید از این غذاها بخورم پخمه بیرون رفت و مرا چند دقیقه با افکار سیاهم تنها گذاشت وقتی برگشت داشت با چوب کبریت لای دندانهایش را پاک می‌کرد. میخواست نشان بدهد که غذای چرب و گوشتی خورده ولی من مطمئنم که تظاهر میکرد و چیزی نخورده بود دوتا قهوه هم سفارش داد و گفت بعد از چون یک قهوه بد نیست من هم بدم نمیآمد با خوردن قهوه کمی احصابم رو تخویر کنم. پخمی دنباله داستانش رو شروع کرد البته پدر و مادرم از این موضوع خیلی ناراحت شدند ولی بیچارها با هر زحمتی بود خودشان رو کنترل کردند و شروع به دلداری من عمودند. آسمان که به زمین نیامده همه که نباید افزار ارتش بشن میتونی یک کار دیگه پیدا کنی. کاسبی روزها از هر کاری بهتره. منم چاره‌ای نداشتم جز اینکه حرفهای آنها رو گوش کنم. با خودم گفتم حالا که از مدرسه نظام بیرونم کردن، باید در مکتب زندگی دیپلم بشم. تصمیم گرفتم از منزل پدرم بیرون بروم و تا در کلاس زندگی فارغ و تحصیل نشم، پیش خانواده‌ام برمگردم با این تصمیم دو سه روز بعد، بار سفر بستم و به استانبول رفتم. یک روز بهار بود. درخت تازه شکوفی کرده بودند و شهر منظره عالی داشت مدتی توی خیابانها پرسی زدم میخواستم کاری پیدا کنم هر کاری باشه شنیده بودم که خیلی از هیچی به همه چیز رسیدند مگه من چه چی چیزم از اونا کمتره اگر جینلار نشدم اقل میتونم یک میلیونر بشم عجلوه ساختمان ها که رد میشدن به خودم میگفتم یک روز همه این مال تو خواهد بود همینطور که دستهام رو توی جیبم کرده بودم و سودزنان از کوچهها و خیابانها میگذشتم به آینده نامعلومم فکر می کردم دلم از گرسنگی داشت آشوب میشد ولی به خودم امید میدادم که برای رسیدن به موفقیت باید کلیه ها را تحمل کرد جلوی یک مغازه بزرگ و شلوغ رسیدم به افتاد یک راست برم پیش صاحب مغازه و بگم کاری به من بده اما خیلی زود منصرف شدم مگ به آدم ندیده و نشناخته کار میدند با این حال به طرف یک رستوران بزرگ راه افتادم میخواستم به صاحب او بگم که به هم کار بده هر کاری باشه زرفشویی جاروکشی، موزایک شستن فقط شکمم را سیر کنه. اما پام پیش نمی رفت. دو ساعت جلو ویترین ایستادم و خوراکی های پشت ویترین را تماشا کردم تا میخواستم وارد مغازه بشم ارادهام سست میشد بالاخله دلم را به دریا زدم هرچی باد آباد. وارد رستوران شدم گارسون با صدای بلند گفت بفرمایید. چیزی نمانده بود خنده ام بگیره. میدانستم که گارسون مرا با یک مشتری اشتباه کرده خواستم توضیح بدم ولی گارسون صبر نکرد. جلو افتاد و مرا به طرف میزی که وسط سالن بود راهنمایی کرد. چطور میتونستم بگم اشتباه کرده و من برای گرفتن کار اومدم. بخت پشتی میز نشستم. گارسون تعظیم می کرد و گفت ام بفرمایید. خدا زل کنه چه امری بفرمایم؟ گارسون دوباره تکرار کرد چی میل دارید؟ پرسیدم چی دارید سوپ کباب برگ کوفتهریزه سالاد الویه چلو خورشت گارسون داشت اسم غذاها را میشمرد و من قیمت آنها را توی لیست دید میذارم و موجودی جیبم را حساب میکردم توی جیبم فقط صد و قروش داشتم چون خیلی معطر شده بود گفتم فعلا یک سوپ بیار هم یک خوراک ریزه و یک مشخاب شیرینی میخواستم شکمم را سیر کنم پولش هم یک جوری میشد وقتی غذا رو خوردم و شکمم خوب سیر شد به فکر افتادم که چکار کنم پول ناهارم روی هم رفته هفت هشت لیره میشد و من نه تنها این پول رو نداشتم بلکه کت و شلوارم هم به این مبلغ نمیورزید مدت زیادی نشستم منتظر بودم تا رستوران خلوت بشه وقتی همه رفتن گارسون به طرفم آمد قلبم هوری ریخت و توی دلم شروع به خاندنی دعا کردم اله خودت آبروی من حفظ کن از کتک خوردن ترس نداشتم کاش که بدون سر و, و آبروریزی یک یک فصل فصلکوک حسابه بهم به بزنند و مرخصم کنند گارسون جلوی میزم ایستاد مثل اینکه بوی از قضیه برده بود اخناشو تو هم کرد و گفت گفتقولبا میخواهیم تعطیل کنیم ولی من منتظر کسی هستم که باید برام پول بیاره گارسون خنده ای کرد که از ست و فوش بدتر بود ساش و دوس این طرف و آن طرف تکان داد معلوم بود از این کلک زیاد خورده و گرگ باران دیده است. منتظر بودم چپ و راست تا کشیده به هم بزنه اما بی معرفت این کارو نکرد دستش روی میزم گذاشت و سرشو جلو آورد و گفت ساعت انگشتر قوطی سیگار هم قبول میکنی. این دفعه نوبت من بود که بخندم. بیچاره خبر نداشت که سرتاپای من به قدر پول ناهارش قیمت نداره با صدای لرزا گفتم. داداش راست و رستگارش اینه که از پول و اشیاء قیمتی هیچی ندارم رگهای گردن یارو سیخ شد و داد کشید، پس غلت کردی از این درآمدی تو منم من آمدم کار پیدا کنم شما اصرار کردین نهار بخورم وکی مگه خونه خالت بود آهسته آه گفتم تو را به خدا آبروی منو نبر فردا و فردا میارم میدم چیچی رو میاری میدی مرد حسابی اگه هر روز دو تا مشتری مثل تو اینجا بیان کار ما زاره قول میدم من مثل اونو نیستم حاضرم به جاش براتون کار کنم یارو که میدید من قذرو خوردم و کار از کار گذشته گفت باشه بیا تا بهت نشون بدم غذای مجانی چه مزهای میده مثل باوری که دنبال صاحبش میره پشت سرش رو افتادم. نمیدونستم چه نقشه ای برام کشیده. دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. خدایا نکنین یک بلای سرم بیاره.